بسم الله الرحمن الرحیم کتاب سبقی و کتاب مسابقه و مسابقه بر دو نوع هست نوعی که بدون عوض هست و عوض اون چیزی هست که در مسابقه قرار داده میشه جایزه تقریبا نوعی که بدون عوض هست و اون جایز هست چه پیاده باشه چه با خر باشه چه با قاطر باشه چه با فیل باشه چه کشتی باشه چه وزن برداریش باشه و قسم دومش مسابقه در مقابل ایواز یا به عوض هست که این اون چیزی است که منظور مفظ در این بحث. تاصح المسابقه و على دووا به هست مسابقه بر چه پاه ولی منظورش اینجا اون من چرپایانی هست که در قتال نف میدهند که پنج تا هستند اسب و قاع رو شتر و خ و فیل. بر غاف مثلا اينو جائز نمیدون انطبق مذهب والمناضالة بالسهام اذا كانت پس ال... مصابق جائز است بر چهارپا وجائز است بالسهام بالصحام جائز است اذا كانت المصافة معلومة زمان مصافت معلوم باش اون مصافتی که انجای که تیراندازی صاده و وصیفت المناضالت معلومه و اون صفت و کفیت تیراندازی هم معلوم باشه مسافت هم معلوم باشه اون صفتش هم معلوم هست یعنی دو تا تیرانداز یا تیراندازان معلوم کنند کفیت تیراندازی رو ترتیب رو در تیراندازی کدومی که شروع میکنه این چیزها رو مشخص کنند ويخرج العوض احد المتسابقين حتى انه اذا سبق استرده وان سبق اخذه صاحبه له ميگه خارج ميكوند ايواز را اون چيزي ركه قرارش داده اند در مسابقه ولا جروه يا جایزه بش بگيم هر چي ميگه و خارج ميكوند اون ايواز را بهترين اصطلاح مين ايوازه یکی از مسابقه دهندگان تا جایی که اگر برد استرده او، اون عوضو باز می و این سبق اگر باخت مسبوق شد از اون سبقت گرفتند برنده نشد بهترین لفظش اینه اخذهو صاحبهو له اون همراهش اینو این عوضو بر به این شکل صحیح. اما و این اخراجاهو معان اگر هر دوتا اون با باهم بیرون کردند هر با باهم شدند و اون ایوازو گذاشتند لم یجس می فرماد این جائز نیست این که هر دوتا باهم بشند و به اسطلاح خودمون جائز رو قرار بدن این جائز نیست الا ان يدخل بینهما محللا مگر اینکه یک محللی رو بیارند حلال کننده رو یعنی اینجوری جایز نیست مگر یکی رو بیارند که اون چیزی ندهد به عنوان محلل حلال کننده فان این سبق اگر اون شخص برنده شد اخذ العوازه اون عوضو اون جایزه رو بر و این سبقه لم یغرم اما اگر برنده نشد دیگه چیزی نمی پردازد به این شکل جایزه بله پس این راهش مثلا پونزه نفر می خواستند مسابقه بدن تاشون گذاشتند یکیش نه اینجا هم دیگه دوتاش چیزی گذاشتند برای جایزه و یکی دیگه نه یکی پولی نداد یکی چیزی نداد پس کتاب مسابقه و تیراندازی رو خوندیم با این مسائلی که بیان شد اما اگر این کسی که اون عوضو این هم اضافه کنم طبق مذهب گذاشته بود از اونهایی که در مسابقه شرکت میکردن نبود اونجا جایزه مشکلی نیست اونجا به اطلاق بله بحث بعدی کتاب امانی و نضور کتاب یمین ها سوگند ها و نظر هاست کتاب امانی و نضوری کتاب یمین ها سوگند ها و النظر و ها لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى بس نميشوت يا صحيح يا حاصل نميشوت يا صحيح نيست سوگند مگر به الله تعالی او من اسمائه يا بانامي از نامهای خداوند ها سوگند به رحيم سوگند به رحمان او صفته من صفات ذاته يس سوگند به از صفات باري تعالی بس سوگند يا بقول له باشي يا بيكي نامه از نامش يا بالصفات يا الصفاتش، اما صفات ذاتش بریناساس اگر سوگند گفت والكعبةتي سوگند بكعبة، این سوگند لیست، این سهیه نیست، این جایمین حاصل نشد. ومن حلف بصدق ماله، فهو مخير بين صدقه او كفارة اليمين و هر کس سوگند خورد به صدقه دادن مالش نظر کرد که مالش را صدقه بدهد مانند این که بگوید اگر وارد خانه شدم پس برای الله هست بر من که مالم را صدقه کنم میگه پس این این شخص فهو پس این شخص مخير بین صدقتی او کفاره الیمین اختیار دارد که مال و صدقه کند یا نه مال و صدقه نکند بلکه کفاری سوگند بپردازد که جلوتر خواهد آمد و شیء فی لغو الیمین و چیزی در سوگند لغو نیست کسی از زبانش برید بدون قصد سوگند و واللهی بعضی عادت دارند بدون قصدش اینجا کفاری نیاز نیست اینجا چیزی بر لازم نیست بس چیزی نیست در سوگند لغف و من حلف الله یفعال شیعن فعمار غیره بفعله لم یحنث هر کس سوگند خورد که کاری را انجام ندهد چیزی را انجام ندهد پس دستور داد کسی دیگر را که آن شخص را انجام بدهد مثلا سوگند خورده که بردهش را نفروشد شخصی دیگر را در فروش آن وکیل گرفت. لم احنف این حانس نیست، بر سوگندش از سوگندش را نشکسته برش کفار سوگند نیست و من خلف فعل امرین هر کسی سوگند خورد بر انجام دو کار، ففااه احدهما اما یکی رو انجام داد. مثلا سوگند خورد که من این دو لباس و، نمی بوشم بعدا اومد یکی از این دو لباس رو پوشید لم یحنث اینجا هم با سوگندش مخالفت نکرده اینجا هم حانث نشده سوگندش رو نشکسته. و کفارت الیمینی هو مخیرون فیها بین ثلاثه اشیاء کفاره سوگند شخص بین سه چیز اختیار دارد یک اطق رقبه مؤمنه یک برده مؤمنی را آزاد کند دو او اطعام و عشرت مساکین کل مسكين مددا او کسوتهم ثوبا ثوبا دو یا اینکه کے بدهد آنها را ده مسکین را پس یک یا برده آزاد کند دو یا ده مسکین را غذا بدهد و هر مسکین را یک مد که قبلا گفتیم این کتاب ما پاورقش در آورده گرم خوردی 541 گرم و 7 میلی گرم یا برده آزاد کند یا ده مسکین را خوراک بدهد که هر مسکینی را یک مد او کسوت هم ثوبند ثوبند یا ده مسکین را لباس بپوشند هر مسکینی رو لباس بپوشاند اگر این سگوزینه رو نتوانست فا ایلم یجد فصیام و ثلاثت ایام در این صورت سه روز روز میگیرد ببینید امروز تو جامعه رواج شده بعضی مناطق مثلا طرف از ابتدا میاد روز می گیرند نه اگر گوزینه قبلی رو توانایی نداشت اون موقع سه روز روز میگیرد فصل النظرة فصل بعدي درابتة بالنزر هاست. ميقول النظرة يلزم في المجازات على مباح وطاعة. نزر لازم مشه واجب مشه وفاء در مجازات به مباح و به طاعت یعنی زمانی که نظرش مباح و طاعت بود و زمانی که مؤلق بود اون نظر به امر مباح یا به عبادت و طاعتی زمانی که اون مؤلق حاصل شد اون چیزی که تعلیقش کرده نظرشو باید وفا بکنه مانند که قولهی ماننده این الله مریزی فلله علیه ان اصليه او اصومه او اتصدق اگر شفادات خداوند سبحان مریز مرا پس برای الله هست بر من که نماز بخوانم یا روزه بگیرم یا صدقه بدم اگر اینجوری نظر کرد چون اینا نظر برطاعت اند نظر بر کار مباحه اگر شفادات خدا من مریزم را، بعد وفاد میکنه. اگر فرزندم قبول شد کنکور یک گاف قربانی میکنه. بعد وفاد کنه. و ادامه بحث قبلی و لزمه من ذالک ما قو علیه الاسم. خب موعی گفته اگر فرزندم خدا شفادات نماز بخونه یا روزه میگیرم یا صدقه میدم اینجا چقدر نماز بخونه چقدر روزه بگیره چقدر صداقه بده میگه لازمی میشه بر او با این حرفش به اندازه که اون اسم برش واقع میشه یعنی تعداد رکعاتی بخونه که اسم نماز برش اطلاق میشه اقل نماز دو رکعته. پس خلاص با دو رکعت نماز به نظرش وفا کرده در روزه هم کمترین روزه یک روزه پس با یک روز روزه گرفتن واقع میشه صدقه هم بر مالی که قیمتو ارزش داره مال برش مالی ارزش دار داد مالی که بهش مال گفته میشه من نظر فوپاک و يلزمهم من ذلک یقاو عليه الاسم میگه و لازمی میشه بر این شخص از این نظر چیزی که اون اسم برش واقع میشه اسم سلات برش واقع میشه اسم صوم برش واقع میشه اسم صدقه برش واقع میشه و زمانی که شخص نظر کرد و اونو مقیده به اندازه معلوم نکرد کمترین چیزی که اسم نماز بر اون اطلاق میشه برش لازم میشه که درکته در روزه همچنین که یک روزه ولا نظره فی معصیه در معصیت نظر نیست یعنی اگر نظر کرده بود هیچی نباید وفاش بکنه نباید. که قوله ماننده قولش ان فلله علیه اگر فلانی را کشتم برای خداست بر من فلان چیست این نظر مباح نیست، این نظر طاعت نیست، این نظر معصیت است، این جائز نیست، اینو نباید وفاد کنید. ولا يلزم النظر على ترك مباح و همچنین لازمی نمیشه نظر بر ترک مباح کسی نظری کرده که مباحی رو ترک کند. مانند قوللا ا لحمه نظر کرده که گوشت نخوره خ گوش خوردن چیز مباه یا نظر کرده که لا اشرب را بل شیر نمی نوشم و ذلك یا شبیه این چیزها میگی اینجا هم نظر لازم نمیشه بر ترک مباه پس یعنی وفای به نظر واجب نمیشه در ترک مباه پس نظر لازم میشد وفای به اون واجب می بر مباح و بر طاعت یعنی بر نظر مباح و بر نظری که اطاعت بود